ایران بازنگری در تاریخ قلمرو میانی به نام ایزد یکتا و سلام و ادب خدمت هممیهنان گرامی همراهان صدای امید به ویژه دوستان و پژوهشگرانی که ادامه میدهند و دنبال می کنند برنامه پژوهشی ایران ویژ رو خوشبختیم که در قسمت 36 ام این برنامه در خدمت شما هستیم به همراه دو تن از پژوهشگران این برنامه یعنی جناب آقای فیروزی و جناب آقای ایران مهر عزیز این برنامه رو می‌خوایم با جناب آقای فیروزی شروع کنیم برخلاف سه برنامه گذشته ارتباط تفاوتی هم وجود نداره ما خیلی مثلا در این مورد یعنی عمدی در کار نیستش بر اساس ها و بر اساس موضوعات برنامه پیش می‌ریم ما در قسمت گذشته بخش مربوط به پژوهش درباره قدمت دوران نماد دوره یا دوران پادشاهی شخصی یا نمادی به نام کیومرز رو مورد بررسی قرار دادیم جناب آقای ایران مهر اومدند از شاهنامه حکیم توس حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ عبیاتی رو خوندن و بر اساس پژوهش‌هایی هایی که داشتند و مفاهیمی که توی این عبیات بودن دیرینگی دوران کیومرس رو تا حدودی فرمودند و همچنین فرمودند که این تنها سند نیست اسناد بیشتری هست و قراره که این اسناد رو مجددن از طریق اسناد دیگه و کتاب های ایران که هم این مسئله رو باز مورد بررسی قرار بدن جناب آقای فیروزی مجدداً بر نظری قبلی خودشون پای می فشارند و معتقدند که کیومرث یک پادشاهی بوده و باید همانند مصرشناسان و چینشناسان دنبال این باشیم که دیرینگی زمان و مکان او رو کشف بکنیم و نمیتونیم اسناد مختلفی که در واقع درسته که بسیاریشون حالت استوری و افسانه‌ای دارن ولی اسنادی هم وجود دارن که مشخص میکنه نمادهایی توش هست و دالهایی توش هستش که مدلول اون زمینی بودن و انتخابی بودن پادشاهی به نام کیومرث هستشونه. جناب فیروزی زمینه این که در موضوع بحث صحبت می‌فرمایید، فرمایشات خودتون رو شروع بفرمایید تا این که ما بحث رو ادامه بدیم و در روال عادی برنامه پیش بیم با درود بر شما و شنوندگان عزیز، با نشانی را مهر. باز هم به خدمتتون که در قسمت قبلی بحث این شد که من عرض کردم شاهنامه گرایی چیزی خوبیه. ولی شاهنامه مهوری به صورت مطلق واقعا برای تاریخ پژوهی و باستانشناسی ایران یک واجد است. یک سند متأخر حالا میخواد قدش به تنها یک منبع داشته باشی یا سطح آن منبع. ولی یک سند متأخر اسلامی، روزگار اسلامیه. اینو بخوایم ملاک قرار بدیم برای تعیین تکلیف از عصر حجر و تکامل انسان. تا روزگار پایین ساسانیان این اصلا جنبه پژوهش علمی نداره در هیچ جا. هیچ جون این کارو صورت. بله البته هیچ جای دنیا م... و فکر نکنم ما شاهنام شاهنامه ایران ایرانم دقیقا اینو بگن که فقط شاهنامه هستش. اونطور که, که... دارم بینم که فعلاً دارن با شاهنامه تا این تکلیف همه چی می‌کنن. از شناسی گرفته با تکامل انسان رو ببینن عصر پای سنگی و نو سنگی جلو. و این خوب نیست. حالا برای مثلا صحبتشون واسباده حرفشون مثلا چهار تا خطم از بندهش میارن و یه دو خط از مینوی خرد و اینا کف... این... این کارا رو دنیا نمیکنه. یعنی پژوهشگر حرفه‌ای تحصیل کردن رو مسائل این کار رو نمیکنه. من دوباره میخوام برگردم رو قضیه میارودان شناسی و مصر شناسی تا قشنگ قضیه درک بشه ببینید عرض کردم بارها که در مصر یک سری متون هستن متون متأخر یونانی زبان و متون قدیمی مصریش که اینا یه سری فرانه رو بردن. باستان شناس مصری نه تنها اونها رو اثبات کرده بلکه رفته دوران پیش از اونها رو اثبات کرد و میخوام اونها رو بخونم براتون و ببینید چیکار کرده دوران پیش از سلسله ها یا دوران پیش از تاریخ یعنی پیش از تاریخشون رو گذاشتن دقیقاً پشت جایی که متون شروع کرده اصلا در ایران همین اتفاقی نیفتاده یعنی جایی که ما بهش میگیم پیش از تاریخ فقط در خوزستان هست که این ایلامی ها رو بحث میکنن که اینجا تاریخ وی برای فلات مرکزی زاگروس شمالی، زاگروس مرکزی، فلات مرکزی، این قضیه پیش از طریق اصلا به متون ایرانی توجه نشوده. وی در مسیر نه، در مسیری من پیش از سریخ خوشگار کردن فرهنگ فیوم A از 9000 سال پیش تا 6000 سال پیش از میلاد ببرشید برشید. 9000 سال پیش از میلاد، 6000 سال پیش از میلاد با ویجیگهایی صحبت میکنیم. خاک سپاریش اون اون جا به جایشه، این سوالفالش همیشه صحبت که ما میکنیم. بعداً واردان جلوتر فرهن دوباره همین قضیه فرهنگ عمری بعدیش فرهنگ معادی حالا در مصر سفلا مصر اولیا فرهنگ تاسیان تازیان از هزاره‌ی پنجم همزان با عبیدی میارودان و مسنگ ایران تا جلوتر. تطوین چه جوری این فرهنگ بداریان دوباره همین قضیه فرهنگ امراتیان فرهنگ جزریان جزریان که تموم میشه نقدایی سه شروع میشه که این نقدایسه رو میگن این فراعنه ای هستن که ما پیداشون کردیم در متون نیستن بهشون میگیم سلسله صفر بله ببینید چقدر تنظیم شده و هماهنگ با متونشون عمل میکنن منظورش از این سلسله صفر چی هست یعنی سلسله یک در متون از منس یا نار از منس شروع میشه اینا عمداً یک سری آدم دیگه پیدا کردن قبل از این آقا از کردار و چیز در واقع اسامی متفاوتن و قدمتا متفاوته اینا رو تطبیق به سلسله صفر چه در مصر اولی جنمس سفلا بله چه مصر بالا چه مصر, مصر پایین شمال جنوب و سلسله صفر رو تعریف کردن برای فرنگوی پیشاساریشون به اتمام برسه و بر از اون تازه وارد همینایی میشن که متونشون میگن و همه همهی متونشون کاش مقا... من خیلی خوشحال می‌شدم که این مصریا شاهنامه نداشتن. بنو دوره همین تک بعدی نگاری ما میشدن شک نکنید. اینا عمره تمام اسار بررسی که تطبیق دادن باستان شناسی شو با این قضیه این شاهکار هست الگو هست این قضیه ما تاخته جدا بافته نیستیم که بخوان ببینی که اونا کار رو خورده. آقا از اون برای همالیه که چینی هستن تا اون دنیا روم همین الگوه رو به کار بردن همین الگوه رو نمیتونی بیم که فلان جا هر جا, جا بافته خورده جداره همه جا بس از اون برای دنیا تا این برای دنیا این همه ما یه تیکین وسط یه الگوه دیگه داری رو چه شاهدی رو چه پایی، رو دلخواه ما نمیتونه باشه بیین واده میارودان بشیم همین قضیه رو براتون میتونم توضیح بدم زیاد گفتگو نمیگم میگم نشه دور مصریان پیش از تاریخشون دقیقا مطابق با اون سلسله‌هایی تعریف میشه که برسوس تعریف کرده حالا ریسرش کرده ولی اونجا تموم میشه و بعد سلسله‌ها اینطور پیش از تاریخشون دوباره نمی داخل یعنی کتاب دکتر قدیم دکتر ملک‌شاه میذاری باز کنید پیش از تاریخ ایران و و مصر این ارز بنده توش میبینید که پیش از تاریخ ایران و پیش از تاریخ بیارودن و مصر چقدر تفاوت داره همون سلسله هاشون حفظه و دورهاشون پیش از تاریخشون پیش از اوناست و اینجا قضیه فرق داره سلسله ها رو حذف کردن ام چند تا دونه آخرا گذاشتن که خوردشون قرایی قبول داره و با اون پارادایم حضور آریایی ها و پیش از تاریخ و دوران دل دوران تاریخی از نظر متون دیگر ارزم به خدمتت این سبک از مطالعه مطالعه حرفه‌ای هستش یعنی کسی که میخواد شاهنامارم بهش نگاه کنه باید در این چارچوب نگاه کنه. یک سنت هست در کنان دیگه هر جاش تطق باستانشناسسه داشت با اسناد دیگر داشت پذیرفته میشه. هر جاش تنها بود یک فرضیه میره و هر جاش نقص شد مشکل داشت با یافته های دیگر با همخواانی های دیگر رد میشه شاهنامه قرار نیست از اول تا آخرش صحیح باشه این کسانی که به کتاب مقدتش نگاه میکنند، ما پیرو و مؤمن و این دید مذهبی نداریم به قضیه ما پشجوشگر هستیم این کتابش اونا رو قبول کن خیلی جهش میتونه اشتباه باشه یه بیت حالا فردوسی گفته که یا افسانه است بر رازش پیدا کنه اینو نباید علم کنیم پیرن عثمان کنیم که هر چیزیش که به ظاهر افسانه میاد حتما رازی درونش هست نه اون قضیه توضیح افسانه میتونه باشه الزاما درونش نه نیست نهفته نیست یک حقیقتی بوده که افسانه شده ما از این داستانا زیاد داریم اینا من توصیه می‌کنم به دوستانی که خیلی علاقه ای خیلی عجیب قریب دارن از یک یا دو دقیقه بله به شاهنامه اینه که یه مقدار این مؤسساتی که ایلیات پژوهی میکنن و تورات پژوهی میکنن و یه نگاهی به کارنامهشون بندازن اونام این دوره‌ها رو گذروندن ولی آبردم شو چارچوب علمی ما هم بعد همین کار کرد بله. خیلی متشکرم جناب آقای فیروزی عزیز یک دقیق هم کمتر از وقتتون صحبت کردم با حدودی فرمایش جناب آقای فیروزی از یه جهت خوب میتونه درست باشه مثلا ما در مورد حماسه هایی که سروده شده مثلا ایریاد اودیسه هومر رو هم داریم که بسیاری فکر میکردن جنگ تروا و غذاهایی که اونجا اتفاق افتاده افسانه بوده و در حالی که بعدها اصلا پژش اثبات کرد که افسانه نبوده چنین جنگ اتفاق افتاده شاید در مورد برخی از اوصاف اون یک سری مسئله مطرح شده و اینکه حالا فرمو که مصری ها حالا خدا رو شکر کنن که شاهنامه ندارن خب حالا میشه در موردش گفت که این فرمایشات جدید جنابای دکتر تبا طبع تبایی نمیدم در جریان هستید یا نه باده. همین مسئله باعث شد که مصری ها خب فرنگ باستانیشون هم تا حدودی از دست دادن و در بخشی از خلافت شدن و سر همین مسئله هم خود بنده. تو فضای مجازی یک مسئله ای رو مطرح کردم و بحث ملت ایران رو مطرح کردم و خیلی برای من جالب هستش که ل... بله خب اونا بله... یه چیزی باختن ما یه بله... چیزی دیگر بله, بله, بله. بله از بزرگتون که حالا در داخل پراندس شاید به فرمایشات شما و به این برنامه اعتباطی نداشته باشه و من تعجب میکنم حالا برخی قومگرایان و تجیزی طلبان حق دارن با کلمه ملت ایران طبیقه. مشکل داشته باشم ولی متأسفانه یک سری ها هم توی داخل کشور هستن ها هم نیستن ولی با لفظ ملت ایران مشکل دارن و هی میخوان به جای اینکه مثلا ما ملت ایران و یک دولت ملت نیشن استیت باشیم که با شهروندانی 80 میلیون شهروند با حقوق برابر باشیم ایرانی ها رو هی عضو یکی از اقوام بکنند و هم متعلقانی مصیبت ها رو به بار بیارن دقیقا. و اگر واقعا مهار نشه ممکنه مصیبتی بدتر از شاید همسایه هم مشکل داشته اینجا بسیار کارایی داشته باشه. دقیقا خیلی متشرکلی از فرمایشات شما جناب آقای ایران میر فرمایشات جناب آقای فیروزی رو شنیدیم. البته خب من هم با هردو تا بزرگوار خطابم هست. جناب آقای فیروزی جناب آقای ایران میر در قسمت گذشته یک مسئله ای رو مطرح کرده. می‌بینید؟ اون مسائل و اون متدولوژی که شما میفرمایید که یه شناسی تو چین بوده، یه باستانشناس تو مصر بوده بر یک سری اصولی استوار هست که مثلا ما یه عصر فلزاتی داریم که 6 هزار سال اخیر داریم ما بایده. توی تاریخ حرفه ای تو تمام دنیا اصلا ما نداریم تا 7000 سال قبلش سن عصر فلزات دیگه نداری یه عصر کشا داریم که مال 9000 10000 سال اخیره آیه ایران تو برنامه گذشته یک ادعایی رو مطرح کردند که ما توی ارومیه معدن مثل 24 هزار ساله داره من پرام اولین با اون نشینیده بودم خود من هم شنیدم قبل از هم شنیدم این مسئله رو و امیدوارم جناب آقای ایران مه توی یکی از این از ایشان از همینجا تقاضا میکنم که یک یادداشت یا یک مقاله یک حالا هر که خودشون سلام می میدونن در سایت صدای امید این مسئله رو در حد حالا مثلا توان خودشون حد چند بارگراف با منبع و رفرنسی در اختیار شنوندگان و مخاطبین صدای امید قرار بدن پس کسی که در واقع یه متدولوژی دیجی این متدولوژی رو کامل قبول نداره یعنی میگه که 24 هزار سال معدن مس باشه قطعا خب تکنولوژی بشری که به تکنولوژی استخراج یک فلز میرسه اون بشر قطعا چند هزار سال قبلش به تکنولوژی کشاورزی رسیده یعنی مثلاً یک ما یعنی تقریبا یک چیزی خارج از این متدولوژی است و باید از ایشون تقاضا بکنیم که از این مدعا و از این پذریه خودشون دفاع بکنن و همین برنامه هم برای همین مسئله که دفاع بکنن و جناب آقای ایران زمن ادامه ادامه‌ی فرمایشاتون در مورد بحث کیومرس